از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه این نیر ایت و دهرن من حجر کل قیامه دارم من از فراقش در دید ست علامت لیست دموع عینی ها دالن الالامه هر چند کاز از بینه نبود سودم من جرب المجرب حلت به این ندامه پرسیدم از طبیبی احوال دوست گفتا فی بعد ها عذابان فی قربه سلامه گفتم ملامت ها یدگر گرد دوست گردم والله ما را اینا حبن بلا ملامه حافظ چو طالب آمد جامی به جان شیرین حتی یزوغ من ها که سن من الکرامه